سپاس که با ما همراه هستید خبرهای دانماک در هفته که گذشت رو بسن شما عزیزم بیرستونم با ما همراه باشید دولت دانمارک در رومانی و لیتوانی زندان اجاره خواهد کرد وزیر دادگستری دانمارک گفت این کشور به زودی اتاهایی را در زندانهای رومانی و لیتوانی برای مجرمان دانماکی اجاره خواهد کرد بیکوف این ارم صرف جویی مالی نیست بلکه به این دلیل است که مجرمان در زندانهای دانمارک بسیار راحت زندگی میکنند و ما با این تصمیم می‌خواهیم این پیام را با انها بدهیم که اگر جرمی را مرتکب شوند باید عمر خود را در زندانهای بگذرانند که چندان راحت نیست. امتلاع پلیس از پیگیری قضایی خبرچینان ترکیه گزارش شده که خبرچینان ترکیه در دانمارک از طریق یک خط تلفن اضطراری، مخالفان اردوغان در دانمارک را به آنکارا گزارش میدهند. کارشناسان این گونه اقدامات را نقض قوانین دانمارک توصیف کرده و خواستار برخورد با آن شدند با این حال پلیس ادعاهای برخی ترک تبارها را که به اتهام خیانت به آنکارا گزارش شدهاند را رد و از پیگیری موازه صرف نظر کرده است یارانه احزاب دانمارک زیر انتقاد در دانمارک مبالغی به احساب تعلق می گیرد که نواندگان می از آن در خرید خدمات مشاوری استفاده کنند دولت و حسب سوشیل دموکرات در اول سال یا افزایش 40 درصدی این یارانها بالغ بر 52 میلیون کرون موافقت کردند. گزارش شده که این مبلغ به نسبت تعداد نمایندگان پارلمان بین احزاب تقسیم می شود که احزاب سوشیل دموکرات مردم دانماک و لیبرال به ترتیب بیشترین بهره را از این یارانه خواهند برد اما این تصمیم با مخالفت و انتقاد شدید رئیس پارلمان روبره شده است به این مبلغ را زیاد زیاد از حد و غیر ضروری توصیف کرد و گفت من همیشه بر این اعتقاد بودم که نمایندگان با شخصا مسئول انجام تحقیقات و بیان اظهارات خود باشند و نیازی به استخدام مستخدم و متخصص نباشد تا کارانه ها را انجام داد دانمارک برای های بردهداری عذخاری نخواهد کرد. اعصاب چپگرا از لاس لوکر لاس موسن نخست وزیر دانمارک خواسته بودند که در سفر به جزایر ویرجن از بابت های بردهداری گذشته دانمارک رسن عذخایی کنند. با پیوستن حزب سوشال لیبرال به این درخواست حزب حاکم لیبرال و مردم دانمای در بیانیه اعلام داشتند که دا هیچ دانمارکی نباید مسئول سیاست های اجداد خود در ارتباط به مسئله بردهداری باشد اسپرسن سخنگوی سیاست خارجی حزب مردم دانمارک و رئیس کمیسیون سیاست خارجی گفت هیچ دلیل ندارد که نصر جدید به خاطر اقدامات نصرهای گذشته ازخایی کند و ازخایی را یک بحث مسخره توصیف کرد درخواست پلیس دانمارک برای شناسایی مهاجران غیرقانونی پس از اعلام نتیجه تحقیقات بنیاد راکووب پلیس دانمارک از مردم خواست تا مهاجران غیرقانونی را شناسایی کنند در سال 2016 تعداد 1348 مهاجر غیرقانونی دستگیر و محاکمه شدند اما بر اساس مطالعات بنیاد مذکور هنوز هزار نفر بدون مجوز اقامت در دانمارک زندگی و کار میکنند یک خبر فرهنگی پایان جشنواره بین المللی مستند کپنهاک جشفاره بین المللی کوپنهاک از مهمترین جشفاره جهانی در عرصه سینمای مستند است که در تاریخ شانزه مارس برابر با 26 اسفند آغاز کار کرد و در شش پروردی ما به کار خود پایان داد امسال فیلم رویاهای های دم صبح به کارگردانی مهرداد اوسگوی در بخش هنرمندان و, و محلفان و مستند جنبل به کارگردانی مینا مر و هادی کمالی مقدم به عنوان یکی از های بخش رقابتی موج جدید در جشنواره بین‌المللی فیلم مستند کپنهاگ بر روی پرده رفتند. فعالیت فعالیت‌های شرکت اوبر را ممنوع کرد. فعالیت شرکت اوبر، کمپانی ارائه خدمات جابجایی مسافر با خودروهای شخصی و لوکس را مخالف با قوانین ناظر بر بخش تاکسی رانی اعلام شد. در این راستا راننده‌ای که با استفاده از اپلیکیشن اوبر مبادرت به جابجایی مسافر می کرد محکوم و اتومبیل وی نیز مصادره شده است. اوبر برخلاف تاکسی های سنتی مسافران را از طریق یک برنامه تلفنی با راننده خودرو شخصی که در جستجوی مسافر است مرتبط می‌کند. رانندگان غیر حرفه‌ای اوبر در ازای کرایه کمی از خودروی شخصی خود برای مسافرکشی استفاده می کنن. رانندگان تاکسی در کپنهاگ مانند همکاران خود در دیگر شهرهای بزرگ جهان میگویند از رقابت ناعدالان اوبر ناراضی هستند. به گزارش رسانه محلی محلی اوبر شرکت تاکسی رانی آمریکایی که نار رانندگان تاکسی دانمارک را آجور کرده بود اپان بسته خواهد شد دو هزار شوفر اوبر ناراحت و هزار راننده هزاران راننده تاکسی را خوشحال کرد. انتقاد مجری شبکه مورد علاقه وزیر مهاجرت دانمارک از برخورد وی با پناهجویان. استوربیک وزیر مهاجرت دانمارک یک بار دیگر به دلیل روی کردش در قبال قبال پناهجویان و مهاجران این کشور از سوی یکی از مجریان دیاریت شبکه تلویزیونی مورد علاقهش مورد انتقاد قرار گرفت اقدام انگریستور وزیر مهاجرت دالمایگ با انتشار تصویر ککی با عدد پنجاه بر روی آن در حساب خود در شبکه های اجتماعی و پیام اینکه امروز 50مین قانون ضد مهاجرت نیز تصویب شد باید آن را جشن بگیریم موجب برافتادن. اعتراضات از سوی نخوص وزیر، سیاست و مورد مردم این کشور قرار گرفت دوربین های تنفر رانندگان متخلف دانمارکی کاهش بیابد در سال 2016 شمار رانندگانی که در جاده دانمارک به خاطر سرعت بیش از اندازه جریمه شدهاند افزایش داشت. در حال حاضر صد خود روی حمل دوربین ثبت تخلف در جاده های متخلف دانمارک وجود دارد که سرعت رانندگان متخلف را ثبت و نیز از آن عکس برداری می‌کند اما این پایان کار نیست سخنگوی دولت و حزب مردم دارماک اعلام کرد به دلیل هزینه بالا به زودی شماره خودروهای حمله های سرعت سنج در دارماک کاهش می‌یابد سخنگوی دولت خاطرنشان کرد خودروهای حمله دوربین کاهش میابد اما در مقابل بیشتر شهرهای دوربین های ثبت تخلف با پایه ثابت و 24 ساعت جدید در جاده های کشور نصب می شود تا این دوربین ها اقدام, اقدام به ثبت تخلفات رانندگان در جاده های بنمایند پرواز تهران کوپنهاگ و بلکس متوقف شد در پی قطع پرواز مستقیم ماهانر در مسیر تهران کوپنهاگ و بلعکس دفتر ماهانه در کوپناک پس از گذشت نزدیک به یک سال فعالیت در این کشور بار دیگر متوقف شد و همه مسافران ایرانی و دانمارکی خود را در کوپناک و ایرانیان ساکن نواحی جنوبی سوئد و به ویژه بندر مالمو سه شهر بزرگ سوئد را از دست داد در حالی که مسئولان ماهان علت قطیم پرواز را مشکلات طرف دانمارکی اعلام کردن ولی رسانه های دانمارکی اعلام کردند ماهانه ایر نقش اصلی را در راستای انجام پروازهای غیرقانونی به دمشق ایفا می کند و همچنین ماهانیر از مهمترین تدابیر برای حمایت از نظام اسد به شمال میآید قطع پروازهای ماهانیر به کپنهاگ در حالی صورت گرفته است که فرودگاه کوپنهاک با توجه به موقعیت خود در اسکاندیناوی از نظر اهمیت سیاسی و اختصاصی مهمتر از کشورهای سوئد و نروژ محسوب می‌شود. شهر مالمو در سوئد و کوپنهاگ در دانمارک به دنبال کوتا کردن فاصله زمانی برای آسانتر شدن رفت آمد میان دانمارک و سوئد در سالهای آینده مقامات دو کشور دو شهر مالمو در سوئد و کوپنهاگ در دانمارک توقع کردند که یک خط قطار زیرزمینی میان این دو شهر ایجاد کنند در حال حاضر این دو شهر با قطار و خودرو به هم متصل هستند اما گفته می‌شود که این پل نمیتواند پاسخگوی نیاز ارتباطی دو شهر در سالهای آینده باشد در حال حاضر روزانه 20000 هزار نفر با قطار میان مالمو و کپناک تردد میکنند هزینه انجام مطالعات مقدماتی را اتحادیه اروپا به عهده گرفته اما کل هزینه احداث این قطار زیرزمینی که سیزده میلیارد کرون برآورد شده توسط دو کشور سوئد و دانمارک پرداخت ود شد و یک خبر از, از سوئد دیوان عالی سوئد رأی را در رابطه با مهریه ایرانی را صادر کرد مهریه در سوئد قابل اجرا نیست دقایقی قبل از ظهر روز چهارشنبه 25 مارس 2017 که بدون شک زمین لرزه‌ای در میان زوج‌های ایرانی در حال طلاق در سوئد به راه خواهد انداخت سرانجام پس از انتظار طولانی از سوی دیوان دیوانعالی کشور سوئد که بالاترین مرجع قضایی این کشور به شما می رود و رایح آن ختمش همه دادگاه های کشور خواهد بود در رابطه با یک پرونده مهری ایرانی صادر شد این نخست این پرونده در رابطه با مهری است که در این مرجع غذاایی عالی سوئد مورد رسیدگی قرار می دادگاه‌های دادگاه های سوئدی تا کنون در نقاط مختلف کشور رای متفاوتی را در این رابطه صادر می‌نمودند. در این پرونده یک زن ایرانی در شهر آمنو در شمال سوئد مهریه خود به مبلغ یکنیم میلیون کرون برابر با 690 سکه بهار آزادی در دادگاه بدوی این شهر به مل اجرا گذاشته بود دادگاه بدوی امنو با انتصاب به اینکه مهریه در سوئد قابل اجرا نیست تقاضای زن را رد کرده بود دادگاه استیناف کاملا برخلاف رأی دادگاه بدوی نظر داد که نه قانون سوئد و نه قانون ایران قابل اجراست چون مهریه یک قرارداد است. و اینک دیوان عالی سوئد در رأی نهایی تاکید کرد که قانون سوئد قابل اجراست و زن حق دریافت مهریه را ندارد. در رأی دیوان عالی کشور آمده که مهریه در ایران جهت ایجاد تناسبی در حقوق اقتصادی میان زن و مرد مورد استفاده قرار میگیرد. و درجه بخشی از حقوق اقتصادی در چارچوب قرارداد زناشویی است و می به عنوان جزئی از قرارداد تقسیم اموال در آینده تلقی شود. دیوان ادامه اعلام می دهد که یک قرارداد تقسیم اموال که بدون ارتباط با یک فسخ نکاح قریب تنظیم شده باشد بر اساس قوانین زناشویی فاقد اثر است. همچنین قراردادی که از نظر دیوان عالی کشور در سیستم قضایی سوئد قابل اجرا نیست نکته کلیدی در رابطه با ری دیوان عالی سوئد این است که رای این دیوان مربوط به زوجی است که پس از ازدواج ساکر سوئد شدند و قرارداد مهریه در کشوری دیگر منطقه شده به زبان ساده مهریه در سوئد قابل اجرا نیست و قوانین سوئد میبایست در رابطه با حقوق زناشویی در این کشور رعایت شود و قانون سوئد در این رابطه بر قانون ایران مقدم است رأی دیوان عالی کشور سوئد در رابطه با مهریه نه تنها برای زوجهای ایرانی بلکه برای همه زوجهایی که در سوئد که بر اساس قوانین اسلامی قرارداد مهریه بستند دارای اهمیت خواهد همچنین بر اساس رأی دیوان عالی سوئد زن ایرانی طرف این پرونده علاوه بر شکست در پرونده و از دست دادن حق اجرای مهریه خود در سوئد موظف به پرداخت تمامی مخارج دادگاه همسر خود نیست شده است. تندرستیتون پایدار عزیزان